شب پنجم امروز صحبت صحبت‌های دیشب شما فکر می‌کردم به این نتیجه رسیدم که گویا شما با سحر بیان می‌خواهید خلافت بلافصل علی کرم الله وجهو را ثابت کنید در حالی که می‌دانید حدیث منزلت در غزوه تبوک به خاطر دلجویی از علی گفته شده و هیچ ربطی به بحثی که شما داشتید ندارد اولاً برای ثابت کردن خلافت بلا فصل امیرالمؤمنین علیه السلام دلایل زیادی وجود دارد و محدود به حدیث منزلت نیست. ثانیاً بیان این حدیث فقط مربوط به تبوک نبوده بلکه در جاهای مختلفی از پیامبر نقل شده است. چطور ممکن است دستوری از طرف پیامبر اکرم درباره حضرت علی کرم الله و جهو صادر شده باشد و بعد از فوت پیامبر یاران بزرگ او کس دیگری را به عنوان خلیفه انتخاب کنند. برای این مشکل جوابهای بسیاری وجود دارد، اما با توجه به مقتضای بحث جریان تاریخی را برای شما توضیح میدم. حضرت موسا به انگام رفتن به کوه تور، هارون را به عنوان جانشین انتخاب کرد. اما مردم فریب سامری را خوردند و از پیروی هارون دست برداشتند. هرچقدر هارون آنها را از این کار منع میکرد گوششان بدهکار نبود و حتی میخواستند هارون را به قتل برسانند در قرآن کریم پس از گفته شدن این جریان های هارون را خطاب به موسی پس از بازگشتان حضرت از کوه تور چنین بیان می کند. ای پسر مادرم این قوم مرا خار شمردند و نزدیک بود مرا به قتل برسانند شما را به خدا تعصب را کنار بگذارید و با انصاف قضاوت کنید آیا این تصمیم جمعی بنی اسرائیل بر ترک هارون دلیل بر حق بودن سامری میتواند باشد فکر می کنم که این تصمیم جمعی بنی اسرائیل برای این امر باطل از اجماع ادعایی شما بر خلافت ابوبکر ضعیف تر باشد بعد از رهلت پیامبر صلی الله علیه, علیه و و سلم همان مردمی که توصیه های پیامبر را در مورد خلافت علی شنیده بودند، او را کنار گذاشته و به دنبال دیگران راه افتادند. از علمای خودتان شده که وقتی آتش به در خانه علی بردند و با تهدید آن حضرت را برای گرفتن بیعت به مسجد آوردند، در همان موقع حضرت علی خود را به قبر پیامبر رسانید و همان جمله که هارون به موسی گفت به پیامبر عرض کرد. اگر خلافت حضرت علی مورد نظر پیامبر بود، چرا رسول خدا سریعا ایشان را معرفی نکرده تا این همه اختلاف بین امت به بوجود نیاید؟ الحمدلله حدیث های زیادی که سریعا خلافت بلافصل را حق علی می‌داند در کتاب های شما زیاد یافت می شود. ولی از این نکته قافل نباشید که در کنایه گفتن لطایفی است که در سراحت نیست، اگر امکان دارد بعضی از احادیث را که تسریب امر بدایت حضرت علی دارد، بیان کنید، زیرا ما مچدر شنیدیم که هیچ حدیثی درباره خلافت بعد از خودشان وجود ندارد. یکی از این احادیس روایت یومددار است. علمای شما گفتند بعد از نزول آیه و انزر اشیرت کلقربین، پیانبر خیشان خود را دعوت کرد و تعامی را نیز تهیه کرده بود. بعد از خوردن غذا اقوام خود را به توحید دعوت کرد سپس فرمود هر که به خدا ایمان بیاورد و مرا یاری کند همان او برادر و وزیر و وارس و خلیفه بعد من خواهد بود آن حضرت این جمله را سه بار تکرار کرد هیچ کس جواب آن حضرت را نداد مگر حضرت علی علیه السلام که برخاست و عرض کرد رسول خدا من شما را یاری می کنم پس پیامبر فرمود این علی وسیع و خلیفه من در میان شماست. روایت بعدی را رو از قول خلیفه دوم بیان می کنم. رسول اکرم فرمودند: این علی در دنیا و آخرت برادر من است و خلیفه من در اهل من است. او وسیع من و وارث علم من و ادا کننده دیون من است. هر کس او را دوست دارد مرا دوست داشته و هر کس او را دشمن داشته مرا دشمن خود می دارد. حدیث در این مورد بسیار زیاد است. اگر خواهان دلایل بیشتری هستید، می توانید به کتابهای معتبر خودتان مراجعه کنید. جالب است که بعضی از علمای مشهور خودتان هم به این مسئله اعتراف کردند. نظام معتظلی می نویسد، رسول خدا علی را به عنوان امام تعین کرد و صحابه علی را به همین عنوان شناختند. ولی عمر به نفع ابو خلافت او را کتمان کرد. بد نیست این روایت را نیز از عمر بشنوید که رسول خدا فرمود اگر تمامی درختان قلم گردند و دریاها مرکب و جنیان شمارشگر آدمیان کاتب نمی توانند فضائل علی را شماره کنند. در این هنگام جناب شیخ عبدالسلام رو به آقای حافظ کرده و گفت اگر اجازه بفرمایید در فرصتی که شما استراحت می‌کنید من مختصری صحبت کنم. آقای محترم ما منکر فضایل علی کرم الله وجهو نیستیم ولی چنین نیست که فقط علی صاحب این کمالات باشد بلکه خلفای راشدین هم دارای فضایل بیشماری بودند. شما یک طرفه صحبت می کنید و را بر آقایان مشتبه می کنید به صورتی که فکر می حق با شماست. اگر اجازه دهید من هم شمه از فضائل خلافای راشدین را عرض کنم تا حق کسی زایه نشود خدا گواه است که من از روی تعصب جاهلانه حرف نمی زنم. اگر فضیلتی وجود دارد حاضرم سراپا گوش باشم. البته لازم است طبق قراری که در شب اول گذاشتیم فقط به احادیث مورد قبول طرفین استناد شود پس هدف شما تفر رفتن است چرا چون در های شما حتی یک حدیث هم در فضائل خلفا وجود ندارد این شرطی بود که خودتان فرمودید و تاکنون من هم بر اساس همین شرط سند ارائه کردم ولی چون خیلی علاقمند به ذکر فضائل خلفا هستید سخت نمی‌گیرم ابراهیم ابن خالد نقل میکند که رسول خدا به امویش فرمود ای امو به که خدا ابوبکر را خلیفه من قرار داد از او فرمان ببرید ها رستگار شدی این حدیث کاملا مردود است چگونه مردود است شما همه مطالب را خواهید با حرف درست کنید اشتباه نکنید ما اهل حرف نیستیم علمای خودتان احادیث ابراهیم ابن خالد را غیر معتبر می‌دانند. ابو هریره نقل کرده جبرئیل بر پیامبر نازل شد و گفت خدا تو را سلام می‌رساند و می‌فرماید من از ابوبکر راضی هستم. تو از او بپرس که آیا او هم از من راضی هست یا نه. بدیهی که خدا بر تمام احوالات آدمی آگاه است و هیچ چیز از او مخفی نیست. چگونه می شود خداوند نداند که آیا ابو از او راضی است یا نه؟ متاسفانه این حدیث هم از جعلیاتی است که توسط ابو ساخته و پرداخته شده. حتما می دانی که ابو حریره به خاطر مطامه دنیا و به دستور معاویه حادیثی را علیه علیه علی السلام جعل می کرده و راه را برای لعن و نفرین و آن حضرت آماده می کرده. آقای عزیز چرا به اصحاب رسول خدا تهمت می مثل اینکه که شما شیعیان آخرین درجه هنرتان دشنام دادن به بزرگان است. خواهش می کنم تند نروید ثابت می کنم که کدام یک از ما اهل دشنام دادن و تهمت زدن است. آیا ما اهل تهمت زدن هستیم یا آنهایی که کتابهایشان پر از تهمت و هزاران ناسزا به شیعیان بیگناه است؟ چه کسی گفته که شیعیان مثل یهودی ها به قانون سه طلاقه و عده طلاق اعتقاد ندارند گذارید جریانی را که برای خودم اتفاق افتاد برایتان نقل کنم تا مسئله واضحتر شود. بفرمایید همراه ه دی از ایرانی ها به وسیله قطار از کازمین به سامن را رفتم. در کوپه ما دو نفر از علمای اهل سنت بودند که پیوسته ما را به زبان عربی مسخره می کردند. قابل از اینکه من تسلط کامل به زبان عربی دارم آنها میگفتند و ما سکوت میکردیم تا اینکه یکی از آنها گفت این رافضی ها اهل بدعت هستند آنها بعد از سلام نماز سه مرتبه دستها را بلند میکنند و میگویند خان الامین اطرافیانش از معنای این جمله پرسیدند گفت شیعه میگوید رسول خدا و جعفر و علی در کوه هرا بودند جبریل از طرف خدا معمور شد نبوت را به علی برساند ولی خیانت کرد و به پیامبر رساند. این دروغ شاخدار را که شنیدم طاقت نیاوردم و رو به او کرد و گفتم جناب شیخ. آیا تهمت و دروغ از گناهان کبیره هست یا خیر؟ گفت چرا؟ گفتم شما الان هم دروغ گفتید و هم به شیعیان تهمت زدید. با کمال پرویی گفت مطلب همین است که گفتم، من هم ده دوازده نفر از شیعیان که در قطار بودند و از مطلب بیخبر صدا زدم و از ایشان پرسیدم که شما بعد از نمازتان چه می همگی گفتند سه مرتبه تکبیر می به جوانان سنی که در کوپه ما بودند گفتم شما به کوپه های دیگر هم سری بزنید و از مردم روستایی و شهری شیعه بپرسید تا حقیقت فاش شود، آنها رفتند و پس از مدتی برگشتند و با ناراحتی رو به شیخ کرده و گفتند چرا دروغ میگویی؟ شیخ جواب داد من این مطلب را در کتاب ها خواندم. آیا در این حدیث هم شک دارید که رسول اکرم فرمود به درستی که خدا برای همه به صورت عمومی جلوه میکند اما برای ابو ابوبکر به صورت خصوصی تجلی میکند؟ و همچنین فرمود ابو و عمر بهترین، اولین و آخرین دو سید پیرانه بهش هستند این احادیث نه تنها از نظر ما، بلکه از نظر علمای اهل سنت هم ساختگی است و حتی از لحاظ عقلی هم مخالف با مسلمات دین مبین اسلام است. کجای این احادیث با دین مخالفت دارد آقای عزیز؟ در حدیث اول خداوند متعال جسم فرض شده که کفر نهز است. حدیث دوم نیز کاملا باطل است زیرا بهشتیان تماما جوان هستند و پیری وجود ندارد که سید پیران موضوعیت داشته باشد. محض اطلاع شما ارز کنم که دشمنان اهل بیت این حدیث را در مقابله با حدیث مشهوری که در مدح اهل بیت است جعل اند. محبت کنید و این حدیث مشهور را بیان کنید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند حسن و حسین دو سید جوانان اهل بهشت هستند و پدر آنها افضل از آنهاست این حدیث را تمام علمای شما معتبر می‌دانند دیگر فکر نمی‌کنم منکر این حدیث شوید که رسول مکرم فرمود اگر ابوبکر در میان قوم باشد، سزاوار نیست کسی بر او مقدم شود. برای شما بسیار متاسفم که هر خبری را بدون فکر میپذیرید. اگر این حدیث جعلی نیست، پس رسول پیامبر خدا با وجود ابوبکر، حضرت علی را بر او مقدم شمرد. در کجا رسول خدا علی کرم الله وجهه را بر ابوبکر مقدم داشته است؟ در بسیاری از مواقع. به مثال در غزوه تبوک. در امر وسایت، در ازام برای تبلیغ سوری برایت و در شکستن بوت خوبن. از قول امرعاست نقص شده که از رسول خدا سوال شد محبوب ترین زنان نزد شما کیست؟ فرمود آیشه. سوال شد از مردان پاسخ داد ابوبک. با, ابو با توجه به این حدیث ابوبکر محبوب ترین افراد نزد پیانبر است. پس در گرفتن مقام خلافت بر همه امت حق تقدم دارد. این حدیث ساخته بکریون است و با احادیث قطعی سر ناسازگاری دارد. با چه احادیثی ناسازگارش؟ به از علمای خودتان نرف کردند که بارها و با بارها رسول خدا می‌فرمود فاطمه بهترین زنان امت من است. همچنین از ابن عباس نقل شده وقتی که آیه شرفه قل اسالکم علیه عجرم اللل مبدفل قربا نازل شد جمعی از اصحاب ارس کردند یا رسول الله نزدیکان شما که مبدتشان بر ما واجب است چه کسانی هستند؟ فرمود ایشان علی، فاطمه، حسن و حسین و فرزندان او هستند. جالب اینجاست که شافعی در کتابش می ای اهل بیت رسول الله محبت شما را خداوند متعال بر ما واجب کرده است. در عظمت و قدر شما همین بس که اگر کسی در نمازش بر شما سلوات نفرستد نمازش پذیرفته نمی شود. حدیث دیگری را برای شما نقل کنم تا بدانه که آن کس که نزد خدا و پیامبر محبوب ترین نفراد است، است نه ابوبکر از آیش منقول است، روزی پیامبر به من فرمود، این علی محبوب ترین مردان نزد من و گرامی ترین آن هست. پس حق او را بدان و او را گرامی بدار. و اما حدیث معروف دیگر که به حدیث تیر مشوی شهرت دارد و نزد شیعه و سنی است، به طریق دیگر اثبات میکند که محبوب ترین افراد نزد خدا و رسول علی علیه السلام است. استدعا دارم حدیث تیل مشفی را برای ما بیان فرمایید. برای رسول خدا مرغ بریانی هدیه آورده شد. حضرت قبل از خوردن آن دست به دعا برداشت و به خدا عرض کرد: پروردگارا محبوب ترین خلق خودت را نزد من بفرست تا با من هم قضا شود. انس که ناقل این جریان و خدمتکار پیامبر بوده میگوید پس از مدتی علی در خانه را به صدا در آورد من او را نپذیرفتم و عذر آوردم تا شاید یکی از قبیله خودم بیاید و صاحب این امتیاز شود دوباره در خانه کوبیده شد و دیدم علی است پس از مرتبه سوم رسول خدا به من امر فرمود در را باز کنم. علی وارد شد و با رسول خدا هم غذا شد. این است که هیچ کس نمی تواند در سند آن شک کند. فکر می کنم شما تصمیم گرفتید که تمام آن چرا ما می رد کنید. از عالمی مثل شما تجب می کنم که در حضور این همه شاهد و بعد از چندین جلسه که با هم بودیم چون این نسبتی را به من بدهید. آیا تا الان موردی بوده که شما دلیل منطقی آورده باشید و من لجاجت کرده باشم؟ خیر، هیچ موردی نبوده. کاملا حق با شماست. ما مناظرات قبلی شما را در روزنامه‌ها ایم و مشی و مرام شما را در مناظره قبول داریم. حضرت عالی احادیث ما را رد می‌کنید. آیا اگر از قرآن دلیل بیاورم آن را هم رد می‌کنید؟ خدا آن روز را نیاورد که من قرآن را اما دقت داشته باشید که معنای قرآن را باید از اهل قرآن که رسول الله و اهل بیت ایشان هستند پرسید. آیه 29 سوره فت میفرماید: محمد رسول الله والذین مأهو اشداء و على رو و بینهم تراهم رکعن سجدن سیماهم فی وجوههم من اثر سجود این آیه برتری ابوبکر ابو بکر رو طریق خلافای راشدین رو تعیید میکنه و سریحن علی کرم الله و وجهه خلیفه چار معرفی میکنه این نتیجه گیری ها رو از کجای این آیه به دست برده اید؟ توجه به در این آیه مراد از یعنی خلیفه ابو بکر است منظور از اشده و علالکفار عمر ابن خطاب است زیرا او بود که همواره با کفار با شدت برخورد میکرد و مراد از روحما و بینهم خلیفه رحمدل و مهربان عثمان است و بالاخره در رتبه چهارم علی است که مستاق سیما هم فی وجوههم من اثر سجود است امیدوارم با این دلیل قاطع اقرار کنید که حق با ماست این تفسیری که شما فرمودید صرفا یک کار زوقی بی پایه و اساس است اولا هیچ یک از علمای شما چون این شعن نزولی را برای این آیه ذکر نکرده. شانیان، اگر این آیه دلیل خلافت ابوبکر بود، بعد از وفات نبی مکرم اسلام، نه یک بار، بلکه صد بار مورد استناد ابوبکر عمر قرار می گرفت. سال. این تفسیر از لحاظ ادبی هم همجور نیست. برای شخص متبخر در ادبیات عرب، واضح است که سیاق آیه حاکی از آن است که این صفات مربوط به یک نفر است، نه چهار نفر. اگر آن یک نفر علی باشد، هیچ یک از این اشکالات مطرح نمی شود. عجیب است. مثل اینکه شما نمی زیر بار حرف حساب بروید. انشالله این آیه را می که فَقَد نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا اسْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا إِنَّ آيَةً أَبُو بَكْرٍ وَنَشَاهِدَانِ بَرَتْرِي او زیرا او طرف صحبت پیامبر بوده و علت این مصاحبت هم این بوده که چون رسول خدا می دانست خلیفه بعد از او ابوبکر بک است پس برای حفظ جانش او را به غار برد. اولا اگر علت همراهی ابوبکر علم پیامبر به اینکه او خلیفهاش است بوده باید هر چهار خلیفهش را با خود می برد. نه اینکه خلیفه چهارم خود را در جریان للت المبییت در معرض قصد قرار دهد. ثانییم. به شهادت تاریخ ابو بکر به صورت اتفاقی با پیامبر همراه شد در کجا چنین چیز ادعا شده طبری در تاریخ خود نقو کرده که ابوبکر از جریان هجرت رسول خدا خبر نداشت هنگامی که نزد علی رفت و سراغ پیامبر را از آن حضرت گرفت امیرالمؤمنین جریان را به وی فرمود ابوبکر با عجله خود را به پیامبر رساند و با ایشان همراه شد نکته جالب تر برخی از علمای شما نوشتند پیامبر اسلام از ترس اینکه مبادا و ابوبکر محل اختفای ایشان را لو دهد او را با خود برد در اینجا سؤالی مطرح است و آن اینکه اصلا چرا شما برای اثبات خلافت ابوبکر به این آیه استناد کردید شرافت ابوبکر با توجه به اینکه خداوند او را مصاحب رسول الله نامیده است و نیز با توجه به قول پیامبر که خدا با ماست و اینکه از جانب خداوند سکینه بر ابوبکر نازل شده ثابت می شود. اولا هم صحبت بودن با بر هیچ گونه شرافت ایرانی قرآن کریم افرادی که با حضرت یوسف در زندان بودند را به عنوان هم صحبت یوسف یاد می کند. با اینکه آنان کافر و مشرک بودند. سالین خدا با همه است و این اختصاص به ابوبکر ندارد. منظور از این فرمایش رسول خدا این است که ما محبوب خداییم و لطف خدا شامل حال ماست حتی اگر منظور این باشد که فرمودید باز هم دلیل بر شرافت دایمی نیست چه بسیار افرادی که در ابتدا مشمول لطف الهی بودند اما در انتهای عمر مورد غضب خداوند متعال قرار گرفتند می دانید که در مسل مناقش نیست پس برای جلب توجه شما قضیه ابلیس و بلعم و برسیس های عابد را یادآوری بری بکنم. از حضرت حالی بعید است که مسل ابلیس و بلعم را در این مورد بیا برید. من در ابتدا عرش کردم که در مسل مناقشه نیست. آیا نزول سکینه بر ابوبک نیست شرافت نیست؟ نزول سکینه بر ابوبک نبوده بلکه بر پیامبر اکرم بوده. دلیل ما بر این مسئله ادامه آیه شریفه است خب به آخره ابو هم نبوده لازمه ادعای شما این است که زمایر به کار رفته در آیه به صورت تصمیه آورده شود. در حالی که تمام زمایر مفرد است پس چاره ای جز اقرار به اینکه سکینه فقط بر پیامبر نازل شده است رسول خدا احتیاجی به سکینه نداشته است این حرف شما باطل است اهدی از خلایق بینیاز از الطاف الهی نیست. آیا این آیه را نخوندید که آنگاه خداوند سکینه را بر رسول خدا و مؤمنان نازل فرمود؟ میبینید که بر اساس این آیه رسول خدا نیز نیازمند سکینه است. نکته دیگری که از همین آیه فهمیده میشود این است که اگر ابوبکر بکر معمنان مؤمنان بود خداوند در نزول سکینه بر او کوتاهی نمیکرد. علاوه بر این راویان اخبار و احادیث گفتند که ابوبکر محزون، خائف و مضطرب بود. این نکته را در کنار آیه الا ان اولیا الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون بگذارید تا مطالب زیادی آیه تا شود. شب از نیمه گذشته بود که جلسه خاتمه یافت. از میهمانان به مناسبت بعثت به پیامبر صلی الله علیه به صرف شیرینی و شربت یا مولانا صلی دایما تجل. لا فما ايوفر دون للعصات فان باح شك تقطع سيدي وتمنع س يا الله أنت بعد الله مات الله يا إمام الرسلي يا سندي الله أنت بعد الله مات مادي مات يا حبيبي يا إمام يا دنيا يا واخره الله يا رسول الله خذ بيدي الله فبدنيا يا واخره الله يا رسول الله خذ بيدي خذ بيدي خذ بيدي يا حبيبي ايما وعلينا زادا في المنه الله دخلنا روضا في الجنة وعلينا زادا في المنه الله دخلنا روضا في الجنة, الجنة الجنة يا حبيبي يا وعلينا زادات المنه دخلنا روضات الجنة وعلينا زادات المنه دخلنا روضات الجنة وعلينا دخلنا روضات الجنة الله تخلّر أوطاك الجنة الجنة الجنة يا حبيبي إما لا يبدلنا العسر يا الله إلّك يا أبا ذهرا لا يبدلنا العسر يا الله إِلَكَ يَا أَبَا الزَّهْرَاءِ أَبَا الزَّهْرَاءِ أَبَا الزَّهْرَاءِ يَا حَدِيثِي ما مَا يُغْدِلُنَا الْعُصْرَى رونالد <تصفيق> العصا